SLO horm工 Ta nji zamideci. P 중에 ni h plane sem رفتارره دیدن همه ب رت تو تو چچ. میزنم میپیچم بیچم نس تو. من کف پیچ های خاکی سبز شدم بلا رو مج کسی باکی زندگی هم درست به سرسه هایی را کی مطور کلاف ده و خود کاواسا کی بضا بره بگوشه اون بالاا ما میکنیم تقصیششی کم شغا آفتاب و رنگ زلیمون میه با سوالاطمت محسص و گخار کالالا کاالا داری بزنی رد پامو قدم سوخ بدی بمونی باز تو پای هدف مشکل من اون این تابلو های خطر بس که ندیدمشون از ما ها راحتتم نمیواافم مویه ببشت اگه خمه اخ مامو اگه که تا رفاقه را بود ولی تش حقیقت رو دیدی تنه عرف مامو نمی نمیبافم او رویام و دیگه نه نه خالی کنی پایی کل جامو اگه رفتم دنیا نداشت خوش با من ولی تش عزیزهایی داد که نور چشمام من دم شب پست و تو قف سینه دارم فاز پرواز ببینوا شیرا چی شدن حالا کفتها دسته دستهدید های قدیم تو مقصزی بسته میشه که خونه چشه آقا منتظر اتفاق مشکللا اللا میگه می که ببین آغ سااب میقطتاواکو چه چه بازو دستایی که حساب شرده مردن تو خاطر را زندگی تو لحظه حالا چک یا و چک من میکنم نقطه بگو چیه فاز توکار رو بنگ علی کاسه ون منتظر زنگ به خیال شدنی اهدف شما بلند قدماش درزه فکرش معلوم بجنات درتا خود خودداو کیه خل عصب زیری خشتک آزادی هم مشغوله چا قیدنه چکلا اون روز که سبت شدم طالا زنگین مثل دست اصلای تغییر بگو تشیه این مسیر سبز سایل فکرشت یک عویره محصه رد میشم ازت ولی خوبی مونه ردم پشه خد چیه لاشی خودم تای ختم نمیوفم موی رویا رو دیگه سردم ما رو دیدی صفت نکن فقط بزن دست میوفم موی رویام ببخش اگی خم اخبامم های تو بود ولی تشعیقه تو دیدی تنه هر پون همیشه نه اوکه ما یه دیگه نه نه خالی کنید بای گل جامو اگه رفتم دنیا شده خوش با ولی تشعیقه از از دایی دا نور چشمو هم راه سفر از سرای مسلولین صدای صرفه می من از مساحبت ها تا می آمد کجاست سا از و بد بگم من کجا بودم با یه دستوند چشه و سنا کجا تو عبس خیره میشدم از پلا تو سخف وقت دادگاه پشته همه قاطلا تو سخف همین من بودم که چارت و سالا میرفتم اون پله های داد سرها رو بالا غازی میگو بنویس جرمت به خودت امینالا ولو که فردا قبل نماز میکشیم بالا گفتم ها چی اله بگم شرمنده هم گفت نه بگو شدی سر کرت قرب سرم پایی میزدم یه لبخنده خراب خند نرم اق صورتم که چای چک و سیلی کودی یک کت تکی بله دست بودومش <تصفح> رو میخوای بگ بگو لک میز د اسسی یه لحظه نور کف قف ها دنگ نفس ها عمله اعذا بیگ ذره بر و بر و برسا دسته بر غذا من تو این فضا کییر و گور بودم چه سالی جسانی درستمثل کورهوی صاف همون روززایی که عمل بودی فر رنگ دنبال جا بودین توصففره حقوقه و شر من دیدم فاصله من ومرخاب یهو رد داده ررفتم تو دل ارفاوت چل به ریش نیست به ریشس. as I'm